گنجاندن این نکته از نظر داستانی ممکن است ضد اوج به نظر برسد که مدرسه دوستداران استادان دیرین در مدتی کمتر از یک هفته به سبب نقص پروانه در حقیقت به سبب نداشتن پروانه بسته شد. من اساسم را بستم و به بابی ناپدری هم در رادایلند پیوستم. در آنجا شش یا هشت هفته ماندم تا مدرسه هنری دوباره باز شد در این مدت سرگرم بررسی این موضوع بودم که چرا از میان جانورانی که در تابستان فعالیت دارند دختر شلوارک پوش آمریکایی از همه جالب تر است درست یا نادرست من دیگر هیچگاه با خواهر ایرما تماس نگرفتم اما هنوز گهگاه خبرهایی از بامبی کرامر به من میرسد آخرین خبری که دارم این است که کارتهای عید نوئل خودش را تنظیم کرده است اگر کیفیت کارش پایین نیامده باشد کارت هایش دیدنی